حکایت خوشک در اسکندریه انان طاقت درویش از دست رفته بود و درهای آسمان بر زمین بسته و فریاد اهل زمین به آسمان پیوسته نماند جانور از وحش و طیر و ماغی و مور که بر فلک نشد از بی افغانش. عجب که دود دل خرق جمع می نشود که ابر گردد و سیلاب دیده بارانش در چنین سالی مخنسی دور از دوستان که سخن در بصه او ترک ادب است خاصه در حضرت بزرگان و به طریق اهمال از آن درگذشتن هم نشاید که طایفه‌ای بر عجز گویند حمل کنند بر این بیت تختصار کنیم که اندکی دلید بسیاری باشد و مشتی نمودار خرواری تطری گر کشت مخنس را تطری را دگر نباید کشت چند باشد چو جسر بقدادش آب در زیر و آدمی در پشت چنین شخصی که یک طرف از نعت او شنیدی در این سال نعمتی بیکران داشت تنگ دستان را سیم و دادی و مسافران را سفره نهادی گروهی درویشان از جور فاقه به طاقت رسیده بودند آهنگ دعوت او کردند و مشاورت به من آوردند سر از موافقت باز زدم و گفتم نخورت شیر نیم خورده سگ بر بمیرد به سختی آن در قار. تن به بیچارگی و گرسنگی بنه و دست پیش سفر مدار. گر فریدون شود به نعمت ملک بیهنر را به هیچ کس مشمار. پرنیان و نسیج بر ناعل، لاجورد و تلاست بر دیوار.